ستاران عدب و افسانه‌های ملب داستانها و های آینه روح و نماینده اندیشه و بخشی ارزشمند از فرهنگ آمیانه و ادبیات هر قوم و ملتند. برخلاف تصور، افسانهها ها حکایتی بازگو شده از هزاران سال قبل نیستند بلکه روایت زندگی روزمره ما هستند که در اونها حکمت و دانش بسیاری نهفته است. در تفکر و خیال پردازی فرهنگ ملل برای پیدایش پدیده های مختلف افسانهها، ها تحلیل و تفاسیر وجود داره. انصور خیال پردازی در افسانهها ها باعث شده که در مورد تکامل بعضی از موجودات افسانه هایی شکل بگیره که گاه جالب و شیرین و شنیدنین در همین ارتباط افثانه ای رو براتون انتخاب کردیم از سرزمین ویتنام به نام زشت و زیبا که در مورد چگونگی پیدایش میمون هاست این افسانه برگرفته از کتاب هدیه کلاخها ترجمه عبدالسالح پاک و تنقرقلی یلقیه این افسانه، زیبا و شنیدنی رو تقدیم می کنیم به شما روزی روزگاری در زمانهای بسیار قدیم در گوشه سرزمین ویتنام دو خانواده ثروتمند در همسایگی هم زندگی می کردند که یکی دختری زیبا داشت و دیگری پسری جوان این دو خانواده در کنار همدیگه اوقات خوشی داشتن تا اینکه یک روز تصمیم گرفتن برای ارتباط نزدیکتر وصلتی با همدیگه انجام بدن و دختر و پسر رو به عقد هم در بیارن بعد از رفت آمدها و صحبتهای پیاپی، بالاخره روز عروسی تعیین شد. جارچی ها در شهر جار زدن و خبر عروسی پسر و دختر ارباب بزرگ شهر رو به گوش همه مردم شهر رسوندن و اونها رو به عروسی دعوت کردن. جشن بزرگی برپا شد و مردم از گوش و کنار دسته دسته به طرف مجلس عروسی سرازیه شدند و هلهله و شادی چهار گوشه شهر رو پر کرد و همه غرق شادی و سرور شدند خلاصه چنان قلقلهای بپا شد که نگو و نپاس خدمتکاران سفیدپوش با سینییایی پر از میوه و شیرینی در حال پذیرایی از میهمانان بودند سلات ظهر بود که سفرههای رنگین غذا پنج شد و غذاهای متنوع و مطبوع چیده شد بوی مطبوع انواع غذاها همه رو به طرف سفره ها و همه مشغول خوردن شدند. در این لحظه پیرمرد مرد پوشی که محاصلی سفید و صورتی استخونی داشت آروم وارد مجلس عروسی شد و در گوشه ایستاد و با چشمان ریز و کوچیکش همه جا و همه کس رو از نظر گذروند. کم کم نگاه ها متوجه حضور پیر مرد شد. صدای اعتراض کسی از میون مهمونا بلند شد که این پیرمرد اینجا چی میخواد؟ و کسی دیگه ای پرسید: کی اون اینجا را داده؟ مردی که در حال بدندون کشیدن رون مرغ بزرگی بود با دهان پر و با لحنی می گفت: نافششون نگاه. انگاری از توی گور در اومده. صدلااق خنده از گوش و کنار بلند شد. پیرمرد که مستأصل مونده بود با تردید چند قدمی به جلو برداشت و خودش رو به سفره غذا نزدیک کرد. و با صدای ضعیفی گفت اجازه میدید یک کمی از این غذا بردارم داماد با شتاب جلو اومد و بر سر پیرمرد فریاد زد زود برو بیرون از اینجا اینجا جایی تو نیست پیرمرد اصرار کرد خواهش میکنم کنم فقط یک کمی غذا می خواهم. خیلی گرستم داماد در حالی که دماغش رو با انگشتانش گرفته بود با را گفت چه بوی جندی می دی آقا اشتهای همه رو گر می کنی به بعد به خدمتکارا دستور داد که پیرمرد رو از مجلس عروسی بیرون کنن پیرمرد باز هم اصرار کرد ولی همون رو به باد تمسخور گرفتند و از خودشون دور کردن داماد به خاطر ورود پیرمرد به مجلس از مهمون ها ازخایی کرد و به طرف عروس که در گوشهای به انتظارش نشسته بود رفت و همه بار دیگه مشغول خوردن شدند پیرمرد در حالی که دست و پاش از فرت گرسنگی و ضعف می‌لرزید با زحمت خودش رو به کنار چاه آبی که در اون حوالی بود رسوند و بعد از اون که دل و آبی از چاه بالا کشید و صورتش رو شستشو داد آروم زیر سایه درخت بلندی دراز کشید پیرمرد از رفتاری که با شده بود ناراحت و عصبانی بود و گرسنگی هم سخت آزارش می‌داد در این لحظه شبهی از دور نمایان شد پیرمرد یک کمی جابجا جا شد شبه نزدیکتر رسید پیرمرد از تعجب دهنش باز میده بود در مقابلش دخترکی بود که دو سطر رو به دو سر چوبی بسته بود و چوب رو روی گردنش آویزون کرده بود دخترک به پیرمرد لبخندی زد و زیر لب سلام کرد پیرمرد با دقت به دخترک نگاه کرد دخترک صورت سیاه و زشتی داشت و لباس رنگ و رو رفتهای به تن لاغر و ضعیفش کرده بود پیرمرد در نگاه اول از دیدن صورت سیاه و زشت دخترک به وحشت افتاد ولی خودشو کنترل کرد و هیچ عکسالعملی از خودش نشون نداد دخترک از پیرمرد پرسید پدرجان اینجا چه میکنی پیرمرد گفت من مسافرم و چند ساعتی که وارد این شهر شدم، دخترک با لحن دل سوزانی پرسید، لابود خیلی هم گرسنهی، این اینطور نیست، پیرمرد به علامت تصدیق سرش و تکون داد، دخترک زشرو دلش به حال پیرمرد سوخت و با خوشحالی گفت، پدرجان تو میتونی از این غذایی که من هم هم دارم بخوری؟ و بعد با مهربونی بخچه غذا شو جلوی پیرمرد باز کرد پیرمرد با خودش گفت این دخترک با وجود صورت زشت و سیاه چه قلب سفید و مهربونی داره و توی صورت دخترک مهربون پیرمرد خندید دخترک پیرمرد رو به خوردن دعوت کرد و پیرمرد که سخت گرسنه بود با تندی شروع به خوردن کرد وقتی کاملا سیر شد از دخترک پرسید دخترچون کجا زندگی میکنی؟ دخترک جواب داد همین نزدیکی ها من توی یه خونه خیلی بزرگ کار میکنم امروز عروسی پسر ارباب منه و بعد با حیجان ادامه داد اونجا توی خونه ارباب جشن بزرگی برپاست و اده زیادی اونجا جمعن بعد آهی کشید در خودش فرو رفت پیرمرد پرسید پس تو تو توی اون خونه بزرگ کار میکنی ها؟ دخترک جواب داد درسته الانم خیلی دلم میخواد مثل بقیه یک اونجا باشم شادی کنم و از اون همه غذاهای خوشمزه بخورم پیرمرد با تحجب پرسید خب چرا اونجا نمونده دختر اکسرشو پایین انداخت و با صدای آرومی گفت هرباب و زنش گفتن من زشت و سیاه هم و ممکنه مهمونه از دیدن من ناراحت بشن و تو وحشت کنن برای همینم به من اجازه ندادن توی مجلس عروسیشون بشن پیرمرد سری سریت داد آثار تعثر توی صورتش نمایان شد و زیر لب گفت پس اونا تو رو هم به عروسیشون را نداد دخترک گفت بله همینطوره زن ارباب مقداری غذای پسونده به هم داد تا یه جای دوری از چشم مهمونا برم و بخورم و بهم گفت تا جشن عروسی تموم نشده حق ندارم به خونه برگردم دخترک ساکت شد و به دور دستها خیره شد پیرمرد از شنیدن حرفهای دخترک غمگین شد و بعد تمام ماجرای خودش رو از لحظه ورودش به مجلس عروسی تا لحظه که اونو بیرون کردن مون به مون برای دخترک تعریف کرد. دخترک دلش برای پیرمرد سوخت و با خوشحالی گفت من خیلی خوشحالم که تونستم به تو کمک کنم. پیرمرد به چشمهای مهربون دخترک زشرو که برق شادی توی اون موج میزد خیره شد و گفت تو دختر مهربون و خوشقلبی هستی. منم از آشنایی با تو خوشحالم. ازت ممنونم که غذای خودتو به من دادی. دخترک لبخندی زد و آروم به طرف چاه آب قدم برداشت. صدای هلهله و شادی از سمت خونه ارباب به اوج خودش رسیده بود. دخترک سطل آب رو پر کرد و به کناری گذاشت و دوباره به نزد پیرمرد برگشت پیرمرد که مهربونی دخترک به دلش نشسته بود به دخترک گفت دخترم من میخوام در برابر خوبی که در حتم کردی کاری برای تو انجام بدم دخترک با تجرب پرسید چه کاری؟ پیرمرد جواب داد هر کاری که تو بگی فیدا میداد حالا هر آرزویی که داری بگو من اونو برآورده میکنم دخترک با تعجب نگاهی به پیرمرد انداخت و با تردید پرسید هر آرزویی که داشته باشم پیرمرد تایید کنن گفت هر آرزویی که داشته باشی دخترک من منمنی کرد و با شرم گفت من من من من, من, من و زبونش نچرخید که ادامه بده پیرمرد پرسید تو چی دخترم بگو فجالت نکش دخترک با حسرت گفت من آرزو دارم مثل دخترای دیگه زیبا و خوشرو بشم بعد آهی کشید و گفت ولی افسوس افسوس که این کار غیر ممکنه و از دست کسی کاری ساخته نیست پیرمرد لبخندی زد و گفت ولی مطمئن باش که من میتونم این آرزوی تو رو برآورده کنم. دخترک با خوشحالی گفت: راست میگی؟ تو قدرتی این کارو داری؟ پیرمرد گفت: البته دخترم. البته. و بعد از دخترک خواست که همراه اون راهی بشه و دخترک هم با خوشحالی به دنبال پیرمرد به پیر مرد و دخترک به جنگل بزرگ و سرسبزی رسیدند که پر از درختهای درهم تنیده شده بود صدای آواز پرنده ها همه جا پیچیده شده بود پیر مرد ایستاد و به روت که از میان جنگل میگذشت اشاره کرد و به دخترک گفت دختره تو باید در این رودخونه شنا کنی و به اون طرف رودخونه بیای من اونجا منتظر تو هستم دخترک پرسید شنا کنم این کار چه ربطی به آرزوی من داره پدر جان پیرمرد گفت صبر داشته باش دختر جان بعدن خودت همه چیز رو میفهمی دخترک چیزی نگفت و خودش رو به رودخونه انداخت جریان آب آروم بود و دخترک شناکنان به جلو می رفت. بعد از چند دقیقه به اون طرف رودخونه رسید دخترک پیرمرد مرد رو دید که در انتظارش ایستاده بود دخترک در حالی که سرتاپا خیس خیس شده بود از رودخونه بیرون اومد حس عجیبی توی وجودش می چرخید و بیقرارش می کرد یه دفعه چشم دخترک به تصویری که تو رودخونه بود افتاد تصویر صورتی سفید و زیبا دخترک با تعجب به اطراف نگاه کرد به جز خودش و پیرمرد که در چند قدمی او ایستاده بود کسی دیگه ای به چشمش نخورد دخترک با تعجب دوباره به تصویر سفید و زیبایی که توی رودخونه نشپسته بود نگاه کرد و اون وقت یقین پیدا کرد که آرزوش برآورده شده و این صورت سفید و زیبا متعلق به خودشه دخترک از خوشحالی فریاد زد من من این, این منم من و دستهای سفید و کوچیکش رو برای شک خدای مهربون به آسمون بلند کرد و زیر لب گفت خدایا ممنون ممنون من زیبا شدم زیبا و در حالی که اشک شوق توی چشاش حلق زده بود رو به پیرمرد مرد کرد و گفت متشکرم پدر متشکرم پیرمرد هم از خوشحالی دخترک خوشحال شد دخترک باز هم به تصویر زیبای خودش که همچنان توی رودخونه نقش بسته بود نگاه کرد حالا دیگه اون دخترک سیاه و زشت رو نبود به خاطر خوش و کمکی که به پیرمرد کرده بود به دخترکی سفید و زیبا مبدل شده بود دخترای در حالی که از خوشحالی بالا و پایی میپرید سطح های پر از آف را پرداشت و باز از پیرمرد تشکر کرد و با خوشحالی به طرف خونه اربابش براه افتاد. ستاره ها کم کم توی آسمون سیاه شب پیدا شدند و نسیم خنک شامگاهی به آرومی میوزید صدای شادی و هم همه هنوز به گوش میرسید دخترک به نزدیکی خونه اربابش گرسید سطح های آب رو به کناری گذاشت و آروم و بی صدا وارد مجلس عروسی شد همه در حال شادی و خنده و گفتگو بودند با ورود دخترک همه به یک باره متوجه اون شدند و سر و صداها خاموش شد همه از دیدن دخترکی به اون زیبایی به حیرت افتادند و با کنجکاوی سرتاپهای دخترک رو برانداز کردند سکوت سنگینی بر مجلس عروسی حاکم شد زن چاق و فربهای سکوت رو شکست و با صدایی بلند گفت چه دختر زیبا و ملیحی یه زن دیگه گفت حتما از خونباده ثروتمندیه و زن چاق و فربه به سختی خودش رو جابجا جا کرد و از زن بغدسی فرسید ببینم این دختر زیبا از فامیلای عروس یا داماد زن شونه بالا این و گفت نمیدونم هرکی هست خیلی زیبا و دلنشینه نشینه که زیبا همینطور گوشه ای بود و نمیدونست چی بگه و چیکار بکنه در همین موقع عروس توی صورت دخترک خیره شده پرسید تو کی هستی از کجا اومدی دخترک سکوت کرد عروس اعلام داد کی تو رو به این عروسی دعوت کرده از فامیلای دامادی دخترک باز هم چیزی نگفت زن ارباب که در گوشه ایستاده و محو زیبایی دخترک شده بود با صدای بلند گفت شاید این دخترک زیبا لال باشه دخترک به گفت نه نه نه نه من لال نیستم خانم ادهی از این عکس عمل دخترک به خنده افتادن. عروس از دخترک پرسید خب حالا که لال نیستی بگو ببینم تو کی هستی اینجا چیکار میکنی؟ دخترک گفت من یکی از خدمتکاران این خونه هستم زن ارباب با تعجب جلو اومد و گفت خدمتکار این خونه؟ کدوم خدمتکار؟ زن چاغ و فربه رو به زن ارباب کرد و گفت خانم حیف نیست دختری به این زیبایی رو خدمت کار کردی واقعا حیفه خانم حیفه ا از دخترک پرسید تو تو تو این خونه کار میکنی دخترک زیبا تسدیح کنن سری تکون داد و گفت بله من سالهاست که تو این خونه کار میکن همه با تعجب به زن و پسر ارباب که در کنار عروسی ایستاده بودن نگاه کردند. هم همه همه بالا گرفت و هر کسی چیزی میگفت زن ارباب که از نگاه اهل مجلس کمی ناراحت شده بود شونهاشو بالا اینداخت و گفت من که سردر نمیارم ما هیچ وقت تو خونمون یه همچه خدمتکاری نداشتیم دخترک اصرار کنان گفت چرا خانم داشتید من همون خدمتکار زشت و سیاهیم که هر روز خونه رو گردگیری میکنم و از چاه براتون آب میارم یادتون نمیاد زن ارباب با تعجب به سر تا پای دخترک نگاهی انداخت و با تردید گفت ولی تو که زشت و سیاه نیستی دخترک گفت آخه من در این لحظه ارباب بزرگ از راه رسید چینی به ابروان سیاهش انداخت و پرسید اینجا چه خبره چی شده زن ارباب شوهرش رو به گوشه ای کشوند و تمام ماجرا رو براش تعریف کرد ارباب با تعجب گفت ولی چطور ممکنه شاید چرکی تو کار باشه دخترک معدبانه گفت نه ارباب اینطور نیست باور کنید من خدمتکار شما هستم و بعد تمام ماجرا رو برای ارباب و اهل مجلس تعریف کرد از شنیدن حرفهای دخترک قلقله ای به پا شد و همه سراسیمه به طرف در هجوم بردن تا هرچه زودتر خودشون رو به جنگل برسونن و در رودخونه شنا کنن تا اونا مثل دخترک زیبا و خوشرو بشن در عرض چند دقیقه خونه ارباب خالی شد و دخترک تک و تنها گیج و منگ توی خونه ارباب باقی مونده بود حتی ارباب و زنش هم رفته بوده <laughs> ¶¶ جمعیت به جنگل رسیدن پیرمرد هنوز اونجا بود و از دیدن اون همه آدم که با شتاب به طرفش در حرکت بودن هراسون شد جمعیت نزدیک و نزدیکتر شد و وقتی متوجه شدند این پیرمرد همون پیرمردیه که اونو از مجلس عروسی بیرون انداختن و مسخرش کردند از حرکت ایستادند و با شرمندگی و از روی ناچاری از پیرمرد عذرخواهی کردند پیرمرد که هاجواج مونده بود از اونها پرسید چی شده چرا اینجا اومدین ارباب جلو اومد و با لحن بظاهر مهربانانه ای گفت پدرجان ما اومدیم از تو خواهش کنیم همونطوری که این دختره که زشت و سیاه رو زیبا کردی آرزوی ما رو هم برآورده کنی و پسر ارباب که همون داماد باشه جلو اومد و ادامه داد البته ما قبول داریم که رفتارمون با تو رفتار خوب و ای نبود ولی حالا از تو خواهش میکنیم ما رو ببخشی و آرزوی ما رو برآورده کنی جمعیت یک صدا گفتن خواهش میکنیم پیرمرد که تازه متوجه غذایا شده بود لبخندی زد و سریتکندد زن ارباب به پیرمرد گفت ما حتی حاضریم در مقابل این کار هر مقدار پولی که بخوایهید در اختیارت بذاریم و جمعیت باز هم یک صدا اضافه کردند بله بله ما حاضریم پیرمرد در دل به اونها خندید ارباب پرسید خو خب پدر جان چی میگی آرزوی ما رو هم برآورده میکنی پیرمرد با سردی گفت خب حالا بگید ببینم چه آرزویی دارید از میون جمعیت صداهای گنگی بلند شد زن ارباب جمعیت رو به سکوت و آرامش دعوت کرد و به پیرمرد گفت ما همگی میخوایم مثل اون دختره که سیاه و زشت زیبا و جذاب بشیم پیرمرد باز هم در دل ها خندید و چند لحظه سکوت کرد و بعد گفت باشه من آرزوی شما رو برآورده می کنم جمعیت به دور پیرمرد حلقه زده و ازش تشکر می‌کردن چند لحظه بعد با اشاره پیرمرد همه خودشون رو به رطونه انداختن و جریان آب اونا رو با خودش به جلو برد اونا شناکنان به اون طرف رودخونه رسیدن و با شتاب از رودخونه بیرون اومدن ولی همه از دیدن همدیگه به تعجب و شگفتی افتادن چرا که تمام کنشون پر از موهای سیاه بود و پیشونیشون چین و چروک برداشته بود و از همه عجیبتر و مسخرتر این که یه دومه سیاه بلند و پرمودر در ورده بودن بله اونا همهشون به شکل میمون نرومده اودن و از پیرمرد هم خبری نبود که نبود اونا با عصبانیت به این طرف و اون طرف میپریدن و چون از شکل و شمایل خودشون خجالت میکشیدن از فکر بازگشت به شهر و خونه منصرف شدن و در همون جنگل مندگار شدن و هنوز که هنوزه در کنار رودخونه‌ها روی درختها به زندگیشون ادامه میده. افثانه زشت و زیبا رو از سرزمین ویتنام برای شما نقل کردم این افسانه ها مثل دالان های زمان که ما رو به دوران های باستان و فرهنگ و باورهای ملل هدایت می به و در ظاهر ساده و روان هن. اما در همین سادگی و روان بودن افسانه ها حکمت ها و نکته های ارزشمندی که عبرت پذیر و قابل احترام هن. اشتکی بود از نویسنده و سربیر زینت سالپور اجرا مهران دوستی صداوردار اچبر می کوائین کننده زهرا عبدال زاده تا دیگر بدرود